مصنوی معنوی مولوی برنامه 153 باقی قصه فقیر روزی طلب به واسطه کسب آن یکی بیچاره مفلس ز درد که ز بی چیزی هزاران زهر خورد لابه کردی در نماز و در دعا که خداوند و نگهبان رعا بیز جهد آفریدی مرمرا، بیفن من روزییم ده زین سرا پنج گوهر دادیم در درج سر، پنج حس دیگر هم مستطر. لا یعد این داد ولا یحساز تو، من کلیلم از بیانش شرم رو. چونکه در خلاقیم تنها توی، کار رزاقیم تو کن مستوی. سالها زو این دعا بسیار شد. عاقبت زاری او برکار شد. همچون آن شخصی که روزی حلال از خدا میخواست بی کسب و کلال، گاو آوردش سعادت عاقبت عهد داود لدونی معدلت. این متیم نیز زاری ها نمود، همز میدان اجابت گو رو گاه بدزن می شدی اندر دعا از پای تأخیر پاداش و جزا باز ارجام خداوند کریم در دلش بشار گشتی و زعیم چون شدی این امید در جهد از کلال از جناب حق شنیدی که تعال خافظ است و رافه است این کردگار بی از این دو بر نیاید هیچ کار خفز ارزی بینو، و رفع آسمان بی از این دو نیست دورانش ای فلان خفز و رفع این زمین نوع دگر نیم سال شوره نیم سبز و تر خفز و رفع روزگار با کرب نوع دیگر نیم روز و نیم شب خفز و رفع این مزاج ممتزج گاه صحت گاه رنجوری مزج همچنین دان جمله احوال جهان قهت و جذب و صلح و جنگ از افتتان این جهان با این دو پر اندر حواست زیندو جانها موتن خوف و رجاست تا جهان لرزان بود مانند برگ، در شمال و در سموم بحث و مرگ. تا خم یک رنگی ایسای ما، بشکند نرخ خم صدرنگ را. کان جهان همچون نمکسار آمده است، هرچه آنجا رفت، بیتلوین شده است. خاک را بین، خلق رنگارنگ را می کند یک رنگ اندر گورها. این نمکسار جسوم ظاهر است. خود نمکسار معانی دیگر است، آن نمکسار معانی معنوی است. از ازل آن تا ابد اندر نوی است. این نوی را کهنگی زدش بود. آن نوی بی زد و بی ند و عدد. آنچنانک از سقل نور مصطفی، صد هزاران نو ظلمت شد زیا از جهود و مشرک و ترسا و مغ جملگی یک رنگ شد زان الپلاغ صد هزاران سایه کوتاه و دراز شد یکی در نور آن خورشید راز نه دراز ماند نه کوته نه پهن گونه گونه سایه در خورشید رهن. لیک یک رنگی که اندر محشر است بر بد و بر نیک کشف و ظاهر است که معانی آنجهان صورت شود نقش ها من در خور خسلت شود گرددان گه فکر نقش نامه ها این بتانه رویکار کار جامه ها این زمان سرها مثال گاو پیس دوک نطق اندر ملل صدرانگریست نوبت صد رنگی است و صد دلی، عالم یک رنگ کی گردد جلی. نوبت زنگی است، رومی شد نهان، این شب است و آفتاب اندر رهان. نوبت گرگ یوسف زیر چاه. نوبت قبط است و فرعون است شاه تازه رزق بی دریغ خیرخند این سگان را حسه باشد روز چند در درون بیشه شیران منتظر تا شود امر تعالو منتشر پس برون آیند آن شیران ز مرج بی حجاب حق نماید دخل و خرج جوهر انسان بگیرد بر را بحر پیسا گوان بسم روز نهر روز نهر راست خیز سهم مؤمنان را ایدو. گاوان را حلاک جمعه مرغان آب آن روز نهر همچو ها روان بر روی بحر تا که یهلک من حلک ان نه تا که ینجو من نجا وستیق نه تا که بازان جانب سلطان روند تا که زاغان سوی گورستان روند کستخوان وجزای سرگین همچنان نقل زاغان آمده است اندر جهان قند حکمت از کجا زاغ از کجا کرم سرگین از کجا باغ از کجا نیست لایق غضب نفس و مرد غر نیست لایق اود و مشک و کون خر چون غزا ندهد زنان را هیچ دست کی دهد آن که جهاد اکبر است جز بنادر در تن زن رستمی، گشته باشد خفیه همچون ماریامه، آنچنان که در تن مردان زنان خفیند و ماده از زحف جنان آنجهان صورت شود آن مادگی هر که در مردی ندید آمادگی روز عدل و عدل داده در خوره است کفش زان پا کلاه <متلاح> آن سر است تا به مطلب در هر طالبه تا به غرب خود رود هر غاربه نیست هر مطلوب از طالب دریغ جفت تابش شمس و جفت آب میغ هست دنیا قهرخانه کردگار قهر بین چون قهر کردی اختیار استخان و موی مقهوران نگر تیغ قهر افگنده اندر بحر و بر پر و پای مرغ بین بر گرد دام شرح قهر حق کننده بی کلام مرد او بر جای خرپشته نشاند. وان که گاه نگشت هم پشته نماند. هر کس را جفت کرده عدل حق. پیل را با پیل و بق را جنس بق. مونس احمد مجلس چاریار. مونس بوجل اطبع زلخمار کعبه <تصفيق> <تصفيق> <قع> جبریل و جانها صدره قبله عبدالبوتون شد سفره، قبله عارف بود نور وسال قبله عقل مفلسف شد خیال قبله زاهد بود یزدان بر قبله مطمئ بود همیان زر قبله معنیوران صبر و درنگ قبله صورت پرستان نقش سنگ قبله باطن نشینان ظلمنن قبله ظاهر پرستان روی زن همچینین بر می شمر تازو کهان ور ملولی رو تو کار خیش کن رزق ما در کاسه زرین شد اوقار ونسگان را آب تتماج و تغار لایق آن که بدو خود آده ایم. در خور آن رزق بفرستاده ایم. خوی آن را عاشق نان کرده ایم خوی این را مست جانان کرده ایم چون به خوی خود خوشی و خورمی پس چه از در خورد خویت میرمی مادگی خوش آمدت چادر بگیر رستمی خوش آمدت خنجر بگیر این سخن پایان ندارد وان فقیر گشته است از زخم درویشی عقیر قصه آن گنجنامه که پهلوی قبه روی به قبله کن و تیر در کمان نه آنجا که افتد گنج است. دید در خواب او شبه و خواب کو واقعی بخواب صوفی راست خو حاطفه گفتش که ای دیده تعب رقعه در مشق راقان تلب خفی از آن کت همسایه است سوی کاغذ پارهاش آورت و دست رقعه شکلش چنین رنگش چنین پس بخوان آن را به خلوت ای حزین چون بدزدی آن زور راق ای پسر پس برون رو زنبوهی و شور و شر تو بخون آن را به خود در خلوتی هین مجو در خواندن آن شرکتی ورشود آن فاش هم غمگین مشو که نیابد غیر تو زن نیم جو ورکشد آن دیر هان زنهار تو ورد خود کن دم بدم لا تقن تو این بگفت دست خود آن مجدور بردل او زد که رو زحمت ببر چون بخیش آمد ز غیبت آن جوان می نگنجید از فرح اندر جهان زهره او بردریدی از قلق، گر نبودی رفق و حفظ و لطف حق. یک فره آن که از پس ششصد حجاب هجاب گوشه او بشنید از حضرت جواب. از حجب چون حس سمعش درگذشت شد سرفراز و زگردون، برگذاشت که بود کن حس چشمش اعتبار زان هجاب غیب هم یا بد گزار چون گذاره شد هواسش از هجاب پس پیاپی گرددش دید و خطاب جانب دکان وراق آمدو دست میبردو بمشقش سو سو پیش چشمش آمدان مکتوب زود با علاماتی که حاطف گفته بود در بغل زد گفت خاجه خیر باد این زمان وا می رسم ای اوستاد رفت کنج خلوت وان را بخاند وست حیر والا و حیران بماند که بد اینسان گنج نامه بی بها چون فتاده ماند اندر مشق ها باز اندر خاطرش این فکر جست که از پای هر چیز یزدان حافظ است که گزارد حافظ اندر اکتناف که کسی چیزی را باید از گذاف. گربیابان پر شود زر و نقود به رضای حق جوی نتوان رو بود ور بخانی صد صحف به سکته به قدر یادت نماند نکته ور کنی خدمت نخانی یک کتیب علمهای نادره یابی زجیب شد ز جیب آن کف موسا زوفشان کان فزون آمد ز ماه آسمان کان که می جستی ز چرخ بانهیب سر برآورد است ای موسا ز جیب تا بدانی که آسمانهای سمی هست عکس مدرکات آدمی نه که اول دست یزدان مجید از دو عالم پیشتر عقل آفرید این سخن پیدا و پنهان است بس که نباشد محرم انقا مگس باز سوی قصه بازا ای پسر قصه گنج و فقیر آور بسار. تمامی قصه آن فقیر و نشان جای آن گنج اندارون رقعه نبشته بود این که برون شهر گنجدان دفین آن فلان قبه که در وای مشهد است پشت او در شهر او در در فتفد است پشت باوی کن تو رو در قبله آر وانگهان از قوس تیره در گزار چون فگندی تیر از قاس ای سعاد برکنان موزی که تیرت افتاد پس کمان سخت آورد آن فتا تیر پرانید پر در صحنه فضا زو تبر آورد و بیل او شاد شاد کند آن موزی که تیرش افتاد کند شد هم او و هم بیل و تبر خود ندید از گنج پنهانی اثر همچنین هر روز تیر انداخته لیک جای گنج را نشناخته چون که این را پیشه کرد او بر دوام فچفوجه در شهر افتاد و عوام فاش شدن خبر این گنج و رسیدن به گوش پادشاه. پس خبر کردند سلطان را از این آن گروهی که بودند اندر کمین عرضه کردند آن سخن را زیر دست که فلانی گنج گنجنامه یافته است چون شنید آن شخص کین با شهر رسید جز که تسلیم و رضا چاره ندی پیش از آن کشکنجه بیند زان قباد رقعه را آن شخص پیش اونهاد نهاد گفت تا این رقعه را یا بیده گنج نو رنج به حد دیدم. خود نشد یک حبه از گنج آشکار لیک پیچیدم بسه من همچو مار. مدت ماهی چنینم تلخ کام که زیان و سود این بر من حرام بو که بختت برکند زین کان قطا ای شاه پیروز جنگ و دژ مدت شش ماه و افزون پادشاه تیر می انداخت و برمیکند چاه هر کجا سخت کمانی بود چست تیر داد انداخت و هرس و گنج جست غیر تشبیش و غم و تامات نه همچو انقا نام فاش و زاد نه نومید شدن پادشاه از یافتن آن گنج و ملول شدن او از طلب آن. چونکه که آمدند آمدن در عرض و طول، شاه شد گنج، دلسیر و ملول. دشت ها را گزگزان شاه چاه کند، رقعه را از خشم پیش او فگند. گفت گیر، این رقعه کش آثار نیست. تو بدین اولاتری کار نیست. نیست این کار کسی کش هست کار که بسوزد گل بگردد گرد خار. نادر افتد، اهل این ماخولیا منتظر که روید از آهن گیا سخت جانه باید این فن را چتو تو که داری جان سخت این را بجو گر نیابی نبودد هرگز ملال ور بیابی آن تو کردم حلال عقل راه ناامیدی کی رود عشق باشد کن طرف برسر دود. لاعبالی عشق باشد نیخرد عقل آن جوید کزان سود برد ترکتاز و تنگداز و بیهیا در بلا چون سنگ زیر آسیا. سخت روی که ندارد هیچ پشت، بحر جویی را درون خیش کشت. پاک می بازد نباشد مزد جو آنچنان که پاک میگیرد زهو. می دهد حق هستیش به علت می سپارد باز به علت فتی. که فتووت دادن به علت است. پاک بازی خارج هر ملت است. زانکه ملت فضل جوید یا خلاص، پاک بازانند قربانان خاص، نی خدا را امتحان می کنند، نی در سود و زیانه می زنند، پرنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج تحییه و اجرا کردند